کم کمی لازم به ارادت عرفانی که مهمترین مسئله در فرهنگ تشیع و عرفان عملی ماست که قوانین خاص خودشو داره در فرهنگ ما معروف به طریقت هم هست شریعت و طریقت ببین از این دیدگاه بهتر میشه و میچه چطور طریقت از شکم شریعت در میاد انسانی که علی شریعت نبوده ده شریعت زندگی نگرده ده شریعت تلاش نگرده آه؟ ما اصلا طریقه چی میدونی چیه؟ ارفان چی چیه؟ هم در خیلی از این دکنه های به عرفان و درویشی و این ارفان های هندی آمریکایی طرف این بوی مسلمی درش نیست برای خودش آرفه بگو گمهان خودش رسید و در اونجا میخواد به اصرار آسمانی و متافیزیکی دست پیدا کنه به گمهان باطل خودش خب بنابراین کسی که به امام رسید یعنی به واقع به محشوق خودش رسیده به محبوب خودش رسیده خب این عشقی عشق ایسایی ببین در ذاتشه اصلا او اصلا عاشق اینه که به کسی برسید تا این منش رو و این خودش رو بده به او ها؟ چون ذاتا این مرخلی بدا کرده که ها؟ این منی که یوم براش سلاش کرده بهش رسیده الان خود این من خود هجاب خودشه تا باید ازش را بشه او حافظ تو خود هجاب خودی ها؟ حافظ از میان برخیز انسان به میزانی که به خودش رسیده میبینه که حالا دیگه هجابه حالا از خود خود باسی برخیزه ها؟ امام کسی که تو رو تو میگیره از خود خودت بر یا اون خودت رو از تو میگیره. پس وندی بی خودت میکنه. و تو عاشقانه این کار میکنی. و تو باسه تادب شده باشی. و امام کسی که این کارو میکنه، این خدمت و تو میکنه. اون پیر حق کسی که ایمان ای ازد میگیره. ایمان ازد میگیره تا به ذات اون من درستید در خودت. ایمان این خود حجابیه. این خود ازت می تا من به خود خود که خداست برسید به خود. خب برای همینه که در رابطه بین پیرو مورید در رابطه بین معموم و امام اصل اول اطاعت بیشون سرای مورید از مراده اطاعتی چرا بیشون با با اول چیزی که این اعت درات مورید هست این مورید خودش تا به که داد کنه برای همین اومده اومده که بده خودشو تمامیت خودشو ببین اومده که تمامیت او منش بده ب بنابراین پس این یک رابطه است تمام اییار و 6 برای همینه کامل ترین رابطه دوتا انسان رابطه است بین پیر مورید رابطه است کامل و ششم و ۲زار رابطه صد درصد یعنی مورید بازی تمامیت خود رو در میان بگذاره و تحلیطی میکنه به پیر خودش خب حالا چرا اطاعت بیچون و چرا گفتن باز باشه اطاعت بیچون و چرا کرکرانه نیست نه کسی که به این مرحله رسیده. او این معرفت کسب کرده که حالا موقعشه که این منش رو شیشتون تغییر بده و من چیه؟ میگه تو چی بشه که بندازه بیرون ها بده بگی دیگه دیگه مالو تو. نه کجا هستین این معرفت رو پیدا کرده این در واقع رسیدن به اطاعت بیشون چرا خود خود یکی از نخستین و واجب ترین معرفت عرفانی رو میطلبه یعنی مرید نیست کسی که به واسطه اخرت و تجربه به این یقین نرسیده باشه که بایستی من خودش رو ششتنگ بی شنشرات باستی رد کنه بده به پیرش تا خداییت از او برخیزه آشکار میشه. تا این هجاب از جلو چیشی بده کنار تا به لغا الله برسه در حقیقت بعد او تشنه است باید این کارو بکنه چرا نداره این شنشرات رو کرده ببلاً که به اینجا رسیده از مورید اگه موریده شنشرات نمی نمیکنه. حالا اللازه خرد و حکمت دلیل داره اطاعت بیچونو چرا خب این من چیه مایه این من انسان این من انسان هویت درونی انسان دو کارگاه داره مثل ای بیزیه دو تا قانون داره یکی ذهن یکی دل انسان یکی معقولات یکی محسوسات خب ذهن کارخونه چونو چراست تام شده خب برای همین میگن در این رابطه انسان باستی سر و دل بده سر بسپاره و دل بده هر اطور باستی بده تا منش رو داده باشه با همدی باست بده خب اول با ذهن شروع میشه اول سرسفردنه اولی گام در قرآده تلفنی. تا این که محصوبت میکنیم میدین چی اسمش؟ مکتب مثب فرقی و جدیدی نیست خیلی خواستی نیست این همون مثب با هی ما در شیعه شناستی حتی هم صحبت که امام یا نیچی امام نیچی. اینجا ما بسید اکرار نمیکنیم. از یه لازیم بس, بس همون شیعه شناستی است در واقع باستی گفت یک روی است این من این منه ذهن من منه. من که این بسید چونون شرایی زفیر بدم چون چلوار نمیشه با چون چلوار تکمیل داد میشه نه چون چلوار واسه بیش داد برستی بخوای با چون چلوار چون سوال بدی تا خدا خدای اینترنشنالش تا نذاره که معنی نداره پس کارخونه چون چلوار واسه بیش داد و که به این طلبی کهون این حداقل چیزی که در شکی نداره که این کارو باکنه. و این مهمترین کاری یه باست بکنه نا؟ بقول معروف چونوچرا رو بی چونوچرا رو بست بست کرد خب این یک وجه از من منه دی نه؟ که چونوچرایی منه ببین انسان اون منیت هرکزی مثل که دروه یه طرف چونوچراهاش علت و معلولیت هاش هست اقلانیت هاش هست معلوماتش هست جستجوهاش هاش هست سنجین هاش هست طرف دیگرش هم احساسات و عواطفشه آه؟ که این بشه دلش خب من اگر مثلا وضع کن امام من پیر من به من میگه شما این استقان چایی رو نخور آه؟ خب من اگه بگم چرا نخورم این میگه دلالیش رو بگه با من قانع پشتم و بعد بگم چپ نمیخورم این نوزشی نداره اینجرا؟ برای اگه وقتی من قانی شدم که باید این چایی نخورم خب پس من از کی اطاعت کردم؟ از سنو خودم اطارد کردم دیگه. این خود پرستیه. در اینجا قرار من منتقل بشه. تحویل داده بشه. همینطور که خدا من شد و من منم بایستی منمو بدم به امامم که ولی الله و خلیفت الله. من بایستی منمو بدم به امامم تا امامم منشو بده به من. در واقع رابطه بین فیلمورید رابطه خلافت یعنی امام جای معمون و معمون جای امام قرار میگیره گیره تا به صورتشا وقوع چنین واقعی است یعنی این فنا در هم متقابله جای پیرموری با هم عوض میشه پیر بر جای مرید و مرید بر جای پیر خب این رابطه عشق ایفانی رو مثلا ما در قطعه ایفانیم کم نداریم مشوم سرین و ملمو سرینش مستوی مولوی و قذلیات شمس تبریزی این رابطه بین مراد و موری نیمن من منم و نی تو توی نی تو منی هم من منم و هم تو توی هم تو منی من با تو چنانمی نگار خوتنی کندر در هم که من منم یا تو منی این گفه بین پیر و مریده. این گفه بین مورید هست با پیر که این بس بسید بسیار لطیف که جواش اینجا نیست بردم این داستانی بین این دومن خب نوبرین من اگر با چونسرا با خیلت و علت و با شریعت و با عرف و شر و آیه و سلو بخوام اگه کنم از پیرم این اتاعت, اتاعت نیست اصلا ارزش این داده کاری انجام نمیده چون من بایستیم قلب این خارخونه منمو که ذهن منه چونسرای منه من از بدم تا به مقام بی شنون برسم مقام بی رای. سرایی همون مقام توحیده همون مقام رضایه آیا خدا میخواست منو خلق کنه یعنی من پرسید با شنون من خلق شدم، از شنون منو خلق کرده از عشق کلامش منو خلق کرده در حقیقت تمرین تحبیل دادن خود بپیر تمرین در واقع عشق الهی و آموزش خلقتی در واقع به مقام خلاقیه رسیدن انسانه این تمرین خداییت خداست انسان معیقایی دیست خلیفه خدا باشه اساس و ستون خداییت خدا قدرت خلاقه و خالقیه داشته که انسان بس بهش برسه این رابطه رابطه است که انسان به این مقام برسه و اطاعت بیچون و چرا آموزش درس خداایی آموزش خلاقیت تمرین خلاقیت و رسیدن به گوهره خلاق وجوده رسیدن به گوهره کنفر کنه حقیقت غی کم قدرتی نیست گپراسی براش زحمت کشید تلاش باز کرد این همه داستان ها حیرت آور و تراژدی های عرفانی که داریم برای رسیدن به یک مقام الهیه مباحث هم داشته این همه جهاد ها این بخش عظیم از این ادبیات جان ادبیات عرفانی ادبیاتش عرفانی است خب عرضش رو داشته انسان اصلا برای همین خاطر شده انسان دیگه برای این وادی وارد نشه این رو تجربه نکنه و این راج نکشه رنج انسانی نکشه دست انسانیتش رو تجربه نکرده که اصلا هیچ کاری نکرده اصولاً این اصلا نشده به موجودیت انسانی هرگز نرسیده بعد این بحث اتاعتی بیشنون چرا مطمئنی حد فرمی که باید بکنه که اتاعتی چرا یعنی از خود یه خود بلاستی مرگول منطق مثل مشورت میمونه نه پیر مشابه نیست از پیر باستی اتاعتی بیشنون چرا اصلا هدایت سیر الالله چرا برای که پیر قرار رو به خدا خودت برسونه خدا کیه احد و سمده لمیلد و لمیولده یعنی بیچونوسراست خدا دیگه ا سوره توهید یعنی سوره, سوره بیچونوسرایی ا خدا بیچونوسراست رمید ن یزاد یعنی چی یعن نه پس دارد نه پیش نه علت داره، نه معلول نه زایده ن نه نه نه میزاد بیمثله بیمثله یعنی چی یعن قرمر قیاس و منطق علت و معلولی و, و شرایی شناخته و فهم و دیدار نمیشه خدا خو برای رسیدن به سمت، حرکت به سمت چنین کسی باستی منطقش را کرد منطقش بیچون و است اطاعت بیچون و تراست بلد بیچون و ترا باید داد تا به بیچون و بیچون که تو به او برسید به او ندر آسمان ببولکه در خیشتن خششت برسید ها چون و ترا رو برسید به پیلت تا بیشونو خودت برسی. یعنی به بیچون و ترایی خودت برسید به خدا برسید در خودتون برای سمی بیشنون سرا با چونون نمیشه به بیشنون سرا رسید اینم برخی ما میگن که این تو باشه عرفان مکتب جبر و مکتب اطاعت کورکرانست و مکتب عرباب راییتی و بله اینم حرفی دارم میدنن ولی خب اگه دقیق کنید کسایی که عشق عرفانی رو جابگرایی و اقتادات کورکولانه و هم دونم ولایتگری اونم دونم بردگی میدونن تو برای این جور آدما یعنی اصلاً دین رازی بیخینا مخالفن آقا تقوا رو اصلاً ظلم میدونن تقوا یعنی خیشتنداری ها یعنی هر چیه دیدید بخاط بگون نخوندگی خب از این دیگه نه تقوا یعنی آقا تو خودت مجبور کن نفس تو محدود کن نفس تو ما گفتم است که محدود کردن نفس و مجبور کردین نفس، که انسان به اون هویت ذاتی و انسانی و الی خودش میرسه اون عزمت و خوبیت و احساس وجود خودش می‌رسه. وگرنه یک جانور آزاده است با قول معروف آه؟ لیبرالیزم می دیگه یه کاریش می‌خواد می‌کنه. میکنه ولی بله. اگر انتقاد کنید اصلا اکثر این عرفان که وجود بازار هستند چه از نوع در سنتی نتیست که تم از اشغال میزنن چه نوع هندی و انگلیسی و آمریکاییش تکنولوژی ف و انرژی بازی و انرژی خری و پرواز روح و از این ارفان حلق بازی ها این حالی نگاه کنید همه اینا لیبرالیسم و زندگی دموکراسی غربی آمریکایی است که با واجه های از شاعرانه حافظ مولانا مخلوط شده و تلکیب و تردیس شده آزادی خواهی نفسانی و جانوری شهوت بازی، شهوت بارگی، هرزن عرفان و عشق عرفانی چه میکنی؟ آقا ما اهل اهل حالی ما حال میکنیم این ها بودشون است از این دخون سر هر کوچه یه موزه هست و دخون خیلی خوب و فرورنق یه باستش پرواز روح نمیدارن دورهای های فشورده دارم انرژی درمانی در میلیون بده نمیدارم شیش ماه ما شما رو درمانگر میکنیم با 6 ماه طرف میره باید استاد میشه، خودش آرف میشه، دیالا باید یه قدار رو ارشاد کنه و ما دیدیم از این رو پره الان، خودش یک بزرگی دیگه این قضیه خب، بله، اتفاقا، راه ارادت رفانی، بزرگتای نشانه، قدرت اراده انسانه زیرا انسان، عشق اصلا یعنی چی؟ عشق کمال اختیاره، برای همین، مثلا یک کاری رو انسان اصلا میگن طرف داده کار انجام میده میگن چرا خوب انجام نمیده میگه طرف خوشش نمیاد برعکس یکی یک کار بسیار شقی رو چقدر خوب انجام میده اصلا قصده نمیشه خب بگیم اون آشقانه دارن کار انجام میده ببین پس در واقع عشق کمال اختیاره انسان با معرفت و عشقی که به اطاعت یک پیل و امام در میاد با اختیار کامل و با معرفت کامل از اختیار خودش میگذاره. و اختیارش رو پیرش میده به اختیار برتری میرسه من حقیر خودشو رو میذاره میده ما گفتیم خلیفه پیر میشه و اون من الهی پیر رو دریافت میکنه در واقع که اگر اسمشو رو تجارت هم بذاریم خوب تجارتتن من دوره میکنه یک من کتولی هر دور تنگتاری که میده به یک من جهانی و آسمانی میرسه دیگه منی و نورانی میرسه ظلمت نفسش میده من ظلمانی رو میده، من روانی رو میگیره. بهترین وصف این مبادله رو ما در رابطه ای مولانا شمس در ادبیات مکتوب خودمون داریم. ما میدونیم دیگه مولانا در رابطه با شمس، شمس در رابطه با مولانا چه توافقاتی گفتاد. مولانا همه چیزش رو با شمس داشت، شمس تمام هستیش از اشیری و هیچ پوش کرد ذیح تمام و علمش رو پستشو، موقعیتشو، موقعیتش و همه چیزش و قدرتش رو مولانا داد و از اینکه داد ما باقی عمرش از این معامله که یاده بود میرخسید سماع مولوی سماع حاصل از پیروزی عشق پیروزی معامله‌ای که با شمس کرده بود بنابراین این حرفا که در دراز عرفانی هم در تئات کوکورانا سمه درود درود دو, دو از زحجر ملتات کنه اینا خوب این حرفا تا تو که می‌دونید صورت این قبول نداریم نا ولی ما باش حرفی نداریم و بعد لازم منطق عمومی هم نگاه کنیم خب منطقا منطقای بسیار هرکی رو و قرون است هستند دیگه تعبیر جبرو اختیار از این دیدگاه یک و بحث عصر حجری اتباقا ما در مورد اختیار کم بست نگردیم انسان به کمالی از معرفت میرسه به حدی از معرفت میرسه که میتونه برای رسیدن به اختیار مطلق بای تمامیت خودشو بده هرچه اختیار داره، اون اختیار هرگیش رو بده تا به اختیار برتری برسه در حقیقت از تمامیت خودیتش که اراده و منیت و اختیارش هست بگذره تا به حق برتر و من برتر و اختیار الهی برسه در حقیقا. و همین ها است البته کسی که این محرفات رو اینش کنه داره اصلا برسن این راه وارد نمیشه اصولا در این زمانه ما یک کسی میتونه بزرگ کسی رو به مگه این زمانه کیچی، قدیمیشند نمیتونستن هیچ شای میتونست به زور بنده رو آه، به اطاعت ما بکشه. هرگز نمیتونست. شما وقت نمیتونستن است، خودمونم مجبورید یک پیر کسی که از حیات دنیوی مستغفری انسان رو زمینه. مسئله فقر و فقر نیست. وزونی اون کاری بخواد به اطاعت بکشونه به زور. الا کسی که میله التماس میکنه تا پیر ها اراده خودش بگیره، منیش ازش بگیرید. ها؟ ببین مرید دو معنا داره خود لغت مرید خود لغتش دو معنا داره یکی مفهوم کسی که ارادهش داده یعنی بی اراده یکی هم مفهومی دیگه ش اینه که مرید این یعنی صاحب اراده است خب مریدو میگند از ما خداست وقتی میگیم یا مرید نمیگیم که ای بی اراده خدایی اراده نیست اما خدا مثلا مطلق اراده است ببین پس مرید دو مفهوم متضاد داره و این خیلی جالبه این مفهوم ديال تچید کار دو مفهومش در وجود یک مرید هست. هم در این حال تمامیت ارادهش رو به اختیار و معرفت خودش به پیرش داده خب از این لحاظ یعنی بی اراده اراده سپرده سر سپرده در آن واحد به ارادهی برتر رسیده که اون اراده لای پیرشه یعنی صاحب اراده خدایی شده این هر در آن واحد مستقلانه. هم امریس واحد. چونها بر این الله در مورد ماهیت پیر صحبت بکنیم که اصلا پیر کیه؟ امام حقیقی کیه؟ یه مرشد حقیقی کیه؟ به درستی که در هر خیابان و کوچه ای یک نفر داره کسن ادرق میزنه و خودش آرفه بلا و پیغمبر و امام منجی میدونه و رسمنت داشت طبیل به شوق شده این دور زمان ها دیگه دفتر و دستک دارن و کلاس دارن دو. خب ببین. از یه لاس خیلی از ما سؤال که نشانه های تشخیص یک پیل برحق از یک دجال چیه؟ از یک شارلاتان کلا بردار چی؟ قبلا ما کردیم این تشخیص تشخیص قلبیست پیل در هر مقامی از امامت ولایت وجودی باشه یک انسانی صاحب هویت، صاحب هویت مفهوم حوییت به بران صاحب منیت فوق صاحب یک جاذبه عظیم روحانیست و است در انسان ها. این هر کری، هر احمقی، هر جاهلی، هر کافری در رابط با چنین کسی قرار بگیره کاملا قلبا تشخیص میده که این انسان، انسانی صاحب روح و کشش و جاذبه روحانی است ببین این قدرت از جنس هیپنوتیزم و این حرفندیست نیست. یک جاذبه آشغانه و الهیست. این وقت هر کسی در حد خودش درک میکنه اینو درکی. پس نشان های بیرونی اصلا نمیخواد، اصلا نمیخواد. پس آدم این رو بوم میکشه. همینطور که روح رو نمیشه نشانهش ثابت کرد. ها؟ این هم همون و در این حال نشان های بیرونی هم ها؟ چرا نداره؟ نشان های بیرونیش تمام موازین دینی ماست. ماست. امامای ما امام یعنی این ما اسوه های کامل پیر کامل و مرشد کامل و عارف کامل هستند به درجاتی یک پیر باستی بایستی از این مجموعه صفات رو داشته باشه بایستی ما با حسابات کردیم اصلاً ما زیاد نمیشدیم مسیر خرد و معرفت بر زمان خودش واسط باشه زمانشناس زمان کامل و جامعی بس باشه نون نشو بیرونیشه پاک بایستی باشه حرامخور خور نباشه فاصل بایستی نباشه دوز بایستی نباشه نون به روز نباشی بخوره مذهری از الفقر و فخری بایستی باشه در قناعت و فقر کامل با زندگی کنه فقر با عزت و شاهانه این نوع فقر منظور است نه گدایی نه صدا وگیری نشانهای نشو بیرونیشه بذری این درونه هزارتون بذاری بازم جای بازی داره. چون این زمان اینقدر هنر در پیش‌ها زیاد شدن از این فیلم‌ها خوب میشه بازی کرد. دور هنرپیشگی است دیگه. همینطوری که بخش از این از فیلم‌ها که ساخته میشه از این جور فیلم‌های متافیزیکی اون فیلم‌های عرفانیه دیگه ها. همه مردم یاد گرفتن چطور نقش یک پیغمبر اصلا نقش خود خدا رو منظور میتونن بازی کنن افتاد. باز این نشانه نشانه باطنی و اون مثالی که گفتیم خیلی ساده است. جاذبه روحی است. جاذبه روحی. یک پیرو بر حق طاغ ذات و قلوب و هر کسی رو درید دستی قرار میده و این روشنایی و روح و نور رو در رو القا میکنه و او اینو درک میکنه که درونش روشن شد و احساس روح و روحانیت رو هر کسی به خوش احساس نمیکنه میلک این ملاق فتوفن نیست جاد جادو جنبل نیست شفا دادن و فلان اینها کرامت هیچ پیری به نیست ولی هر کسی از طریق وارد میشه اون درکش کسی از طریق کلامات وارد میشه میخواد حقانیت ثابت کنه او که قبلا گفتیم آدم از طریق جوکی بازی و بازی میتونه به سری از حسابا برسه آه؟ این رفتی به دین و عرفان و معرفت و حقایقان نداره آدم از طریق سریا به سومچی و سر خدا سعی برسه الان ممکن کین تاثیر و شایدره وارد از اینا کم نیست این رو کم نیست کنیم که خیلی از این کلاس از یه دورهایی رفتن دیدن این ها نه دینی هن، نه علی معرفت نه علی حق هن، نه علی خدا این ها شای اللہ سان هنچه هن. که داسباز کردن بطرم پول پارو میکنن این تواوت خیلی کسی که دنبال حقیقت باشه هر بخ... هرگز به دام در ها نمیفته کسی که به دام درجال ها میفته خودش آدم خودفری بوده دنبال حقیقت نبوده این هم یه قایده دیگری هرکس میگه من دنبال حقیقت بودم به دامه یک دجالی افتازم عمرم برباد رفت بایدی باید گفت آقاچون شما دنبال حقیقت اگر بودی بودم اینجا نمی افتادی که تون بال حقیقت باشه خودش صادق باشه صادق باشه در حق جویش انسان صادق کذاب رو به دو شماره تشخیص میده که این کذابه، این ریاکاری این هنر پیش است این هم یکی از نشانه های یک پیله بر حق آره. آن مستی روحانی است که به مرید یا اصلا به هر مخاطبی میده مستی روح عشق مستی عرفان این مستی خود حاصل عشقه اصلا برای همین کسی که مبتلا میشه به عشق کورکورانه و ظلمانی ما میونید در این آشقه ای در این حال در عذاب در آتیش داره میسوزه تا برو خمار شده همون قغرامه صحبت که داشتم از دست داده پس معلومه رو به یک مرشوق دجال و شیطون صفاتی افتاده که اینجوری بی‌قرار شده با آتش کین آتش گرفته و خمار شده بنابراین خیلی از این عشقای تصرفی و ظلمونی به احتياط ختم میشه طرف به خماری و بی وجودی رو میرسه شما خیلی از این مصادره که تو زندان این ها اینا می به نگاه میکنید که تو شده میگه به دل عشق ها به یک عاشق دوستان یک عشق زلمانی شده به دامه یک محشوق شیاط و شقی و کافر افتاده و دل به او داده و در واقع دلش در آتش افتاده و داره می سوزه خب. حالا عکسش هم که وجود داره کسی که دل به یک عارف می ده. یعنی در عشق الفانی کنور می دانه به درست برعکس تمام خماریاش برطرف میشه همونطور که چه بحثه معتادایی که ما دیدیم شاهد بودید ها در این رابطه بیان که از خود بفهمه اصلا ترک کرده اصلا نفهمیدن چطور ترک کرده تا این چیزی اشقیقانیست بدونه که اصلا خماری میگشن ترک کردن اصلا خماری رفت ازشون چرا خماری حاصل بیخودی و بی وجودیه در مبادد مقدمه ما میره دو یک هویت تخیلی و موهومی میگرده دنبال یک خود وهمی است. از اعتیال مواد مخدر به خاطر توهماتی ایجاد میکنه برای من انسان ها بی خود و بی‌هویت به سمت اتیاد میرن و سری متأثر میشن. در اونجا یک توهم خیالی به دست میارن و میگن این منم، این منم. ها؟ اونجا یک من شیطانی و موهومی است، بیریش است. بنابراین یکی از ویژگی‌های پیر و حق اینه که به انسان مستی ارفانی میده، بی نیازی و عزت نفس میده. خماری ها رو از آدم میگیره گره رو رفت میکنه، عادتها عادت ها رو در انسان میشکنه یعنی انسان رو آزاد میکنه نه مجبور مجمور بله. تو در واقع مجبوریت ها و این من مجبور حقیر معتاد علی زهی تو می به یک من برتری میرسی با اخیار برتر با من بی نیاز، عزیز من احد و سمت یک من بی مثال و بهمتاب و یک من خدای که به تو می رسه. و این اسمش چهر نیست، سغارت نیست. مریدی اسم ظاهرش اراده دادنی، باطنان در واقع به اراده رسیدنه. دیگه صبح ساره ندار کنیم. بنابراین اصلا خود یکی از نشانهای بوده که خود پیر ها ایجاد عشق در مریده. اشق ارفانی. اشق الهی. اصلا اشک مفهوم محض کلمه اشک مفهوم محض کلمه یعنی اراده به فدا شدن و فنا شدن برای ارزشی برتر و حقی بزرگتر از زندگی فدا کردن پا گذاشتن حیوانیت و پرواز به سوی روح و حقیقت زندگی یکی از نشانه های برحق بر که چنین اشکی رو در مرید میگذاره او منتقل میکنه ع بتر بودن نابتر بودن انسانتر بودن زیباتر بودن موقد بودن و خدای تر بودن اینش رو میده این هم نشانه دیگری است الان که در در جاها چنین نیست نه میدونی چی مین میکنن پرواز روح جنگری ایناون ها فوتکی ف فدا یاد میم می یه شب پولدار بشید یه شببه مشوب تون حساب بشید کدام مردم وردار دارید، مخ اون رو کار بگیرید ها و از این بازی ها. در حقیقت یک انسان مؤمن در مراتب ایمان و عرفان مسئل اراده خداست. در باره عباد الله این طریق با طوران واضح داریم که مسئل اراده خداستم. دست خدا. چشم خدا. یک پیل در حقیقت به درجه نور الله. نور خداست. در آتباقه او انسان میبینه روشنایی باطن خودش. روح الله. روح خداست. یک مرید در واقع روح دریافت میکنه از پیر خودش. در حقیقت اون نفقه ازلی روح در آدم از جانب خداوند یک بار دیگر احیا میشه در انسان ها. در واقع روح می پیر مرید خودش. روح همی چیه یعنی راده. از در واقع مرید بیرادگیش رو میده تا راده به دست بیاره. چرا که هر کسی دو زمان اسمش رو اراده میذاره مجموعی از نیازها ها و دریوزیگی هست اراده که داره در مرید حقیقی در رابطه با پیل حقیقی وادش صاحب روح میشه روح اراده و امر خداست نعمت لاست مرید رو به بینیازی میرسونه این لاست چشمی پیرش میشه چشمی میشه در قلبش باز میشه تا اون خودش رو ببینه تا چشمش به خودش واز بشه. ما این یک این ترین مورید مهوریترین لسالتش خودشناسی و معرفت نفسه. این همون چیزیست که ما در این دکانهای های در و در هیچ خبری ازش تنها چیزی که وجود معرفت نفسه. خودشناسیه. بلکه که تماما خودفریبیه. اموام اخسام خودفریبی های شعری خودفریبی های بسار روانشناسانه مدرنتر ادبی، اوشوهی و, شوی و بله یکی دیگه از چیزهایی که در عشق فانی حاصل میشه برای یک مرید ایمانه ایمان به یک ایمان عمیق و برتری میرسه ایمان به مفهوم قرار گرفتن در حریم امن الهی این به او عزت نفس و آزادی روح میده بله یک مرید قرائزش رو مجبور میکنه محدود میکنه تا روحش رو آزاد کنه اینجا مکتب از آزادی قرائز حیوانی نیست و نهایتا این کلام خدا رو که بارها گفتیم باز میگیم که این کلام داله بر حقانیت کلی این سخنه در قرآن در صحبت قبل گفتیم خداوند از مؤمنان نیپارسه که امامان خدافن سآلی میکنه از شما تفکر کنید تا ادایت شد میدید آیا به نظر شما اطاعت از خود خدا اختر است به هدایت نزدیکتر است یا اطاعت از کسی که خود خدا او هدایت کرده است کسی که تحت هدایت خود, خود خدا قرار داره اولیو الله هستن یعنی یک پیله انسان کامل پاسوزوی اکثر ما میدیم میگیم معلومه از خود خود خدایت خدا از کنه ولی پاسوز هدایت. اون خدای شخصی که من خودم برای خودم دوست کردم خود خدا میگه اون خدا نیست اون من نیستم اون عبای نفس توی که اسم من رو گذاشته بوش خود پرستیه که اسمش رو خدا پرستی و این شرک و ظلم عظیمه و من با, با سته ای این تومانی که تو داری میزنی معصیت که شدی من تو رو عذاب میکنم و صدایت اینه که انسان پیروی کنه تحت اطاعت بیچون طلاع کسی قرار بگیره که او خود تحت اراده خداست. یعنی یکی از عباد الله المخلصینه و مصحر اراده خداست خود این کلام برخی ها میگن آقا جون ارفان در قرآن نیست نخیر بخش عظیمی از آیات قرآن اصلا بحث عرفانی کاملا و بحث ارادت ارفانی هاست که ما در اینجا فقط یکی دوتو شاوردیم این صحبت شالله در این جلسه دیگه به جنبه های دیگه این مسائل شالله میپردازی و السلام